مایم ما همه ناقص مایم ما همه ناقص و او راست کمال او باقی سرمدی و ما راست زوال او عالم و چیست غیر او معلومات او راست وجود و غیر او چیست خیال به نام خدای رحمان و رحیم با عرض سلام و روز بخیر خدمت خانم ها و آقایان ابتدا به ساکن باز به آمارمون مراجعه بکنیم و بپردازیم به نمودارهای درمان میخواستیم ابتدا تجاربی به دست بیاریم و بعد بگیم نمودارهایی رو با هم مورد بررسی قرار بدیم خب دوستان عزیزی که اصلا فعالیتی نداشتند یعنی در رابطه با کار با دیگران و اینها فعالیتی نداشتن دستشون رو بلند کنن بله ماشاءالله ماشاء سپاسگزاری میکنیم از این دوستان اول گفتیم دست در... بعد به جلسه قددانی رو تشکر بکنیم خب دوستانی که انجام دادند و نتیجه گرفتن کار با دیگران رو دستشون بلند کنن بله بله خیلی ممنون خیلی متشکر جان خب حالا، شما دوباره به من اس بدین دقت میکنید، به من اس بدید، من یه بار دیگه لایب محافظ رو براتون تکرار بکنم ببینیم که اینا رو نداشتین خودتون یا اینه که واقعا مرتبط با این مسئله خب، در بین این گزارشاتی که افرادی که انجام دادن و دیدن که شد و نتیجه گرفتن یه چند تا گزارش گوش بدیم تا سایر دوستانی که قایب هستن، هنوز سوچی نتونستم برسونم تو این فاصله یه چند تا گزارش گوش بدیم از کارهای انجام شده که میتونه برای سایر دوستانمون چی باشه تجربه باشه که نشون بده این مطلب وجود داره و شده حالا اینجا اولین گزارش رو داشته باشیم استاد من در رابطه با اول در با کار با دیگران خدمتتون بگم یه چیزی که او خیلی جالب بود برام دارم تجربه میکنم من همون مثال که همیشه خودم خود م دواقه که هست مادرم که دارم روش کار میکنم به طور مداوم مادر خود من اصلا نمیتونس باور کنه و این سیستم خیلی جالبیش اینه که بدون اینکه مادرم حتی قبول داشته باشه کاملا داره روز به روز مادرم داره حال عمومیش بهتر میشه و روی دستش خیلی خوب داره کار میشه حتی توی این درم میشه که حالت یک طرف است یه زمانهایی واقعا نمیتونه این کار رو انجام بده اصلا میگه خب من نمیتونم چشان به من نگاهستم اصلا نمیتونم ذهنم جمع کنم ولی من یک طرف انجام میدم و داره انجام میشه بالی. بعد یه چیز جالب دیگه اینکه اوزاد همزمان روی زمانی که میخوام اتصال رو برای خودم انجام بدم سی کنم که اونها رو هم حالت توی ذهنم داشته باشم و هم زمان روی هفت نفر با اینکه اونجا نبودن این کار رو انجام دادم تا خودشون در جریان بودم میدونستن بعد گزارش هایی که گرفتم حالا مالی سردت بوده دستشون درد می کرده بوده اینها نتیجه گرفته و یکی دیگه اینکه استاد فقط یه ئله اینکه الون خانم هم بیان کردن من خودم همین علامت ها رو می گیرم مثلا اگر یکی دستش درد میکنه یا مدش درد میکنه من خودم هم اون درد رو دادم ولی درد ادامه دار نیست حس میکنم، بعد استاد دقیقا با اینکه اگه شخصم اونجا نباشه انگار استاد اون مسیر انرژیوی بدن اون دارم میبینم و دقیقا به نقطه دیگهی میرسم که اونم در مثلاً اون قسمتم مشکل داره مثلا یکی ناراحت غربی داشت من نمیدونستم بعد است کردم که قلب خودم داره میزنه بعد بهش گفتم اونم گفت من ناراحتی غربی دارم حالا در این حد نیروهای قبلی من از بین هم نرفته این هم از سوال من هست ولی اون چیزایی که قابلیت هایی که قبلا داشتم حالا منفی یا رو نمیدوندم ولی چیزی دست ندادم من اون حسشی شما هم اینها همه در این حد فوق زیاد شده خیلی چیزهایی که بیشتر نمید. از قبل شده زیاد خب شده. این مطلب هست که ابتدا به ساکن شدید میشه بیشتر میشه به. خب بیشتر میشه ولی شما وقتی توجه نداری دو اینا بعدن شروع میکنه به کم و کم کمتر شدن. خب موارد فقط همین یک مورد دو کار کردین نه نه استاد موس... مورد موردی دیگه حال برای خودم که اتفاق افتاد استاد از... یه شب فوق العاده بیرون ریزی خیلی قوی داشتم بعد خیلی اذیت شدم یعنی فکر می‌کردم هر چی که مثلا یه زمانی دست درد می‌کرد هر چی که اتفاق افتاده بود قبلا برام همه رو اومد بعد استاد یه حالتی شد که ببخشید حالت سرگیجه و هوا اینطوری پیدا کردم. بعد انگار که من فشار قبل این هوا اینطوری بهم رو تخته بودم هم توی بهم فشار می آورد من راست دست مورد دیگه که هستم چون حالم خوب نبود نتونستم بهش توجه کنم من قبلا هم برام اتفاق می بعد این هم شدید باز دوستات در کومود پرده همه شروع کردن تکون خوردن این ها حالم خوب نمیافت بهش توجه خوب حالا به حال یک پدیده هایی هست که توی این قضیه نمیتونیم الان بیاریم بگونونیمش <تص> صرفا گزارش های مرمود فرادرمانی رو الان چون میتونیم بررسی کنیم اونا چی بوده نمیتونیم خوب دیگه از گزارش که میخوایم به درد همه بخوره گزارشی که کاری که انجام دادین تجربهش رو چون میخواییم بینیم که رو چه مواردی شما کار کردین و چه نزجه گرفتین تجربهش به درد دیگران اگه میخوره اونا رو الان میخوام بشنویم خوب دوباره از خوان هم به خدمتتون من استاد خارزدم حامله است چهار ماهه بعد یک هفته بود که اصلا هیچ غذا نمیتونست بخوره همش میگفت غذا اینجا هم گیر کرده بله منم خبر نداشتم یه روز هر روز خونه مادرم بودم خواهرم هم اونجا بود حالا شب پرسیدم گفته رفته دکتر که بره دکتر زنان ببینه چرا اینجوریه و اینا گفتم خب از دکتر که اومد بگو بیا اینجا اومد و بعد دیدم با یه کیسه سرم و از این تشکیلات و اینا گفتن، حالا رود کار کنم کار کردم و همونجا پرتغال خورد و یه رو بعدش یه فیردین خورد و شبشم چلو کباب خورد فردا صبحشم که زنگ زد الان مجبور شد رژیم غذای بگیره پر یه بعد برز گفتم اصلا سروم اینا رو پس دیگه نمیخواد مصرف بکنم بله بله خب همین یه مورد رو کار کرده بودیم خیلی خب یه یعنی خیلی من کار می‌کنم یعنی روزی 10 دفعه کار می‌کنم برای آدمای مختلف کلاً چند مورد کار کردین حدوداً شاید 100 مورد 100 مورد بیشتر از 100 مورد دارین چند مورد چند چند مورد 500 مورد بیشتر از 500 مورد هم دارین کو <تصفيق> یه دستی بزنین البته برای جفت موارد تا من خدمتون بگم خ خب، کلشهایی رو که اجازه بدین اجازه بدین مواردی رو که کار کردین یعنی نوع موردی که کار کردیم و نجی گرفتین باید. اونا رو یه تیترواری اسمی میورید که رو چیا کار کردیم؟ مثلا یه خانم چند روز پیش اومد محل کارم دیدم با کم درد شدید. بله گفتم چیه گفت که... اصلا گفتم اصلا نمیتونست گفتم خب یه دقیقه بشین ظرف 5 دقیقه دردش خوب شد خب مثلا فرض میکنین که ما برای دوستان دوستان توجه بکنن چون این دوباره ممکنه همین سوالا رو بکنن روی این مورد هم میشه آسم هم میشه میگرن هم میشه آرتروز هم میشه آرتریت هم میشه این هم میشه این ها رو من برای این میخوام دوستان گوش بدن ببینن که رو چه مواردی کار شده جواب گرفتن تا جواب سآله خودشون هم باز یه باره دیگه استاد من مادرم سکته کرده یه طرف بدنش فلجه اصلا راه نمیتونه بره خیلی بله. سنگینه وقتی با روش کار میکنم اصلا نمیگم راه میره ولی کسی که میخواه حرکتش بده دیگه اون سبک میشه راحت تر راه میره حالا این دیده درس امروزمون هم هست بله. یعنی این اوارده این که سکته است فلجه مشکل قط نخا، مشکل لحی دیگه نخا. سیستم عصبی صانویه رو امروز میخوام راجبه صحبت کنیم حتی هفته پیش و اینا استارت خورده شما تجربه کردید ولی نمیدونید چی به چیه اینکه شما کار کردید و امروز راجبه صحبت میکنید استاد من خبت. یه سوال داشتم ببخشید این تیترا رو بفرمایید تیتر وار خب پس مورد سکته کار کردیم بله. دیدید که بدن سبکتر شد بله. خب یه جلسه کار کردیم دیگه نه. الان یکی... چند حت جلسه. حت الان جلسه شما تیه پروسه یه مثلا یکی دو سه هفتهی شما ادامه انشالله میدی بعد ببینید که هر بار چقدر بهتر میشه و در نهایت نتیجه چند وقت از سکته میگذره؟ نزدیک یک ساله یک سال میگذره. درسته بله. یعنی یه مطلبی که قدمیه دیگه خب شما ببینید در از چند هفته چه تاثیراتی میتونید روش بگذارید؟ بله. بله. بله، دیگه؟ یه خواهرم چیز داره، آرتروز گردن داره، خیلی بهتر شده باز یه کیسی دارم زانو درد داره، خیلی بهتر شده چی داشتن؟ زانو درد بله اصلا خودش میگفت سقون زانو بیرون زده، الان میگه احساس نرمی میکنم حتی بهش ساعت دادم، دیگه خودش سر ساعت میشینه، میشه میشو، میگه چقدر قشنگ وست میشه بله، بسیار خوب دیگه مورد استاد من تلفنی خیلی کار میکنم با تلفن اشکالی نداره که ابدا آره. اشکالی نداره خیلی هم خوبه آره. اتفاقا <تصفح> اتفاقا پو بالاخره به علت این وجود ترافیک و این مسائل و مشکلات آمد و رفت و اینها این بهترین راه کمک به دیگران هست انرژی میدیم نه این جریان آگاهی یا شعور ما کجا کار می کنیم؟ خب ماده انرژی هیچی راجبش صحبتی نداریم خب خب بالاخره باید ادامه بدیم تا نتیجه داشته باشیم دیگه حالا می بینید که ایشون یعنی نه ببینید اونم راد داره نه نه ببینید شما تلفن الو بله ارتباط رو برقرار کن چیز کن بعد کار تموم شد من اطلاع بده خدا خداحافظ خدا تموم شد قرار است مثلا حالا اگر اما توی این مرحله شما محقق هستیم گوشی رو میگیرین دستتون میگین خب حالا بگو چی شد اون هم گزارش لحظه به لحظه به شما میده چون شما الان در حال تحقیقید میخواد ببینید که چه داره میشه چه اتفاقایی میفته یک نداره الان دو ساعتم پای تلفن باشین چون دارید تحقیق میکنید اما نه اگه واقعا وقتشو ندارید اشکال نداره به ده نفر به ده نفر مساله به صد نفر به 50 نفر شما ارتباط ها رو ساعت چیداشونو داشتکن دارید میگیرید خب الان ارتباط بگیر کارتون تمامشید به من زنگ بزنید بعد نیم ساعت بعد یه ساعت بعد دو ساعت بعد بالاخره میید که افراد زنگ میزنن همشون گزارشهایی دارن حالا این از طریق تلفن نه شما به صد نفس ساعت های ارتباط ها مسالی رو که حالا دوست عیز من گزارش 500 تاشون رو بگیریم این اگه ممکنه لط بکنید اونجا ببینیم خب این 500 مورد. 500 مورد رو ما این 500 مورد مسلما راه نزدیک داره خب مسلما تو این 500 مورد راه نزدیک از راه دور هست تاریخ هست کانال هست شوک هست نمیدونم انوا و اقسام موزهی غره غره غره همه چی هست و تو 500 مورد شما با انوا و اقسام کیسا برخورد کردین براسم راندوم بفرمایید منو سلام عرض می‌کنم خیلی متشکرم. توضیح می کنم من دوره اول رو تقریبا یک ماه تموم کردم و الان مهمان شما هستم. من دوره دوم بشروع کردم. اینکه عرض کردم 500 مورد فقط 500 نفر هست اگر هر کدوم اینها چندین بار تکرار میشن. بله دوره‌های بیشتری دارند. یعنی بلد. در دفترچم الان توی دفترش من فقط 200 نفر رو من ثبت کردم که ساعت‌های مختلف رو دادم و الان دارن اجرا میکنن. اینکه جناب علی فرمودین که مریضی اصلا فرق نمی‌کنه و هیچ مریضی خاصی نیست، واقعا همینطور هست بلید. مثلا اسفاس و ازولانی، سرم و خوردگی ساده، همینطوری شما بگین دل در یا دیروز مثلا پارگی یک مینیسک رو داشتم یه پزشکی مینیسک پاش پاره شد و خودشم امارای کرده بود بله، داشته بریم بله، من با نیروی کیهانی اول باش کار کردم و بعدم با ارتباط با شوره که هم به این ساعت دادم الان میگه خیلی اصلا درد و خیلی کم شده. خودشم تعجب می‌کردن گفت آیا سلول ها ترمیم پیدا میکنه گفتم بله به خاطر اینکه من چندین مورد فقط استخون درد یا انحراف مهره و کمر درد و اینا داشتم اینا, بله. اینا ترمیم شدن همشون. بله من یه سوال من اینجا یه سوالی میکنم حالا شما که از دور قبلمون هستین، کسی دیگه همه بقیه از همین دورن. هم. شما شما هم, شما هم, شما هم دور قبل هستین؟ دو مورد داریم دیگه از دور قبلمون سه مورد بسیار خوب حالا درزی دوستان قیبت داشتن نمیدونم حالا مسئول دیگه توضیح بدم خدمتون که موارد پیش میاد مثل فرزن آرتروز کشه که با آرتروز کار کردن درشونو بلند کنن با آرتروز نتیجه نتیجه نتیجه داشتین نتیجه داشتین شما اینجا داشتین داشتین داشتین داشتین خب. آمار میگه که داشتیم کسی با پوکی استخوان البته حالا زمان زوده برای مثلا چی پوکی استخوان که نتیجه‌اش معلوم شده باشه بهتر شد. بهتر شده حالا همین کس رو زیر نظر بگیریم کارو ادامه بدیم قبلش چیزایی رو دارن آزمایشایی دارن بعدش رو که میگیرید میبینید که ما ترمیم داریم مثلا ما عکس داشتیم که قبل از اتفاقا مادر یکی از همین دوستان مجموعه خودمون قبل از اینکه کار بشه استخون‌ها استخون زانون رو هم و بعد از اینکه این کار شده عکس بعدی نشون میده که اینا فاصله گرفتن خب این چه جوری ممکنه بشه چطوری ممکنه امکانش چجوریه و حالا ما ترمیم داریم بعد روی دیسک و دیسک کمر و نمیدونم این چیزا مثلا اینه که چسبندگی هست مسئله مختلفی وجود داره اما بعد از اون این مسئله برطرف میشه فنابراین یک موضوع رو که ما برامون مثلا مسلمه بحث ترمیمه بحث ترمیم برای ما مسلمه ترمیمی که اصلا از نظر علمی غیر ممکنه محال ممکنه که یک اتفاقی اینجوری بیفته فرق نمیکنه این کی شده باشه به طور کلی این دوتا مدارک قبل و بعد بذاریم کنار هم از نظر علمی محال ممکنه که این اتفاق افتاده باشه، یا بتونه بیفته، چه با دارو، چه با هر امکان دیگه غیر ممکنه، بعضی از آزماشات یا بعضی از مدارک اینطوریه. بنابراین برای ما مسلم و مورزه که بحث ترمیم هم تو این قضیه وجود داره، علتش هم، تئوریش هم ما میدونیم، با هم, هم صحبت خواهیم کرد، یا مثلا تو بخش ذهن با هم صحبت کردیم، یک مقدار با بحث ذهن آشنا شدیم، شما این گزارش رو تکمیل بکنید تا من تصدیق می‌کنم یکی از مریضیای من که می‌فرمایید ترمیم سلولی یکی از دوستان من کلیه‌اش رو به تحلیل می‌رفت و قرار بود که اصلا این تحلیل بره بچاش یه کلیه دیگه‌ای بذارن ولی با فرادرمانی که شروع شده هم متوقف شده و رو به بهودی هم پیدا کرده حتی خودش میگه که دکتر من خیلی تعجب کرده که چطور هم چیزی اتفاق می‌افتید بله من ترمیم داشت. هست ولی بله، اینو بسیار چندین مورد به سلاح برخورد داریم یه نکته دیگه علاوه بر ترمیم ارز کردم اون دفعه خدمتون کار با معتادین هست که گفتم ما با کیسی معتاد من یه نفر کار کردم تا یک نفر هست معتاد و دفعه قبل فکر میکردم که چون گزارش که خانواد داده بود فکر میکردم که دوباره برگشته به وضعیت قبلش ولی این هفته که پرسیدم گفتن نه خیلی بهتر شده حتی اقل یک یک روز در میون این کار رو میکنه. قبلا هر روز صبح ساعت 6 صبح بعد این کارو میکرد. بله الان الان نه یک روز در میون و خودش هم طرز تفکرش و بینشش عوض شده هستن. بله بله. کماکان ادامه بده. البته به کار متعادین باید در کلینیکای ویژه انجام میشه این طرح خاصی است، مسئله خاصی است. چیزای کنترل های خاصی هست تا ما اون کلینیکای بیژه رو صللا دایر نکنیم این ندیجه گیری ها به صلاح خب یه مقدارش زمان بر میشه چون تحت کنترل ما نیستن اد ود که تو تو مورد که تجربی خودم از خدمتون کنم. کنم یکی این هست که با محض اینکه اراده با قصد در ذهن ما ایجاد میشه ارتباط با شعور کیهانی برقرار میشه بله احتیاج به هیچ فشار یا چیز خاصی نیست؟ بله بحث نظر بله. و نظر بازی. هست که راجع به صحبت کردین. و جالب این هست که شاید مثلا من به یکی پنج دقیقه میگم که چشاشو میبنده، ارتباط برقرار میکنه، بعد چشاشو باز میکنه. شاید 5 دقیقه دیگه حرف میزنی با هم. اون میگه مگه میشه؟ میگم بلافاصله چشتو ببند. به معنی که چشم ببنده دوبار ارتباط برقرار خواهد شد دیگه بله، نیازی بله. نیست. بله. خب از طرف ما هم نیاز به نیت خاصی نیست. همین بحث نظره. اونه که متصله یعنی تو حلقه هست. جام جهننماست، ذمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت هست برای اون که تو حلقه است، اینه که بگه من چیکار میخوام بکنم لازم نیست. به محض این وبات تکون بخوره، هوش‌مندی میدونه که این چیکار میخواد بکنه. از این نقطه نظر. <تصفيق> نکته دیگه هم هست که فقط من نمی‌دونم، حالا شاید اینجا بخوام بگم یا نه، این فقط حلقه حلقه فرادرمانی نیست. خیلی از مشکلات اصلا خانوادگی‌شون حل خواهد شد. مشکلات اجتماعال شا تو این بحثف نباده. بله، البته یک مسئله است که یک مسئله است که در مورد به صللا غذاای دیگه به خاطر جلوگیری از حملاتی که ممکنه رخ بده. لذا حلقه های خاص خودش رو باید وارد بشین. خب حلقه های خاص خودش با حفاظ های خاص خودش که جلوگیری بکنه از حملاتی که ممکنه شامل شما چون اصولا، مثلا وقتی شما خیر خواهستین خیر که بخواهید شبکه منفی حمله میکنه اصولا به طور کلی شبکه منفی اون چیز رو که قدمی رو که بخواهیم بردارم مسمد کمال به نوعی ما رو مورد حمله قرار میده بنابراین اون حلقه های هر کدوم از حلقه های خودش استفاده خواهیم کرد. آخرین مذهبی هم میخواستم عرض کنم خدمتتون این ارتباط هست مثلا من گواهات هست که یه بچه‌ای خواب هست اون ساعت می کار رو بچه بکنیم یا پیرمردی که نمیتونه حرف بزنه من معمولا با اون کسی که هوشیار هست ارتباط برقرار می بعد ساعت بهش میدم میگم با شبکه که کیانی وقتی تو ارتباط برقرار میکنی دستت رو اگر روی سر بچه بذاری ارتباط ارتباط یک طرفه نمیدند. نه نه نه, نه. اونو در معرض شعور منفی اون بچه، اون مریض، اون بیمار قرار میدیم. اصلا همچی چیزی نداشتیم اون ارتباط خودش میشه توجه میکنید اون هم که کماست ارتباط خودش میشه ربطی نداره که یکی دیگه دست بذاره رو سر اون یا مادرش اون خواهش میکنم اون چی رو که فقط گفتیم اینن همون چون مثلا ما اینجا هم نگفتیم شما انجام میدید فردا می‌بینید که در معرض اون قضیه قرار گرفتین یه طفل توجه میکنید مگر نه طفل و نمیدونم سال خورده و سالمند و اینا مهم نیست شما امتحان کنید اسمشو اعلام کنید ببینید چطوری میشه بنابراین چیزی رو نیاریم برای اینکه الان خیلی بحث است که ما تو جریانش نیستیم و تو اون جریانی که ما می‌خوایم بسلا یه کاری کرده باشیم این دفعه می‌بینید که یه مشکلات دیگه ای ایجاد میشه بنابراین لازم نیست. شما تپ رو اسمش رو بدید به شبکه و نتیجه رو ببینید نتیجه رو ببینید که چجوری میشه چیارم بفهم میخوام ببینم که این میتونه مرتبط به این ماجرا باشه؟ نه نه ببینید یه سری مسائل روزمرگی ما داریم خب یه سری مسائل روزمرگی ما داریم خب مثلا الان میریم بیرون میریم که ماشینمون رو یکی زده بهش مثلا یه طرف جمعه رو ربطه که نظام پنچر می‌بینیم می‌بینیم می‌بینیم که نظام یه دوستی به قول شما ترور شخصیتی کرد. یه دوستی بهمون خیانت کرده یه دونم نمی‌دونم یه کسی یه کاری کرده نمی‌دونم کارمون بعد آوردیم خوب آوردیم اینها مسائل روزمرگی است و شما الان اگر آمار می‌تونید بگیرید می‌بینید خیلی ها نمی‌دونن عرفان چیه نه دنبالش هستن امروز مورد ترور شخصیت قرار گربتن. امروز مورد یک مورد ناجوان مردانی قرار گرفتن امروز تصادف کردن امروز دوچار هزار تا مشکل شدن بدونه که اصلا بدونن ارفان چیه حالا ما بر حسب تصادف تو ماجرای عرفان افتادیم. همون روزمره که برای ما هست ما تصادف میکنیم ما ماشین اون اگدام چی میشه اینا اینا رو دیگه به حساب به حساب این ماجره ها نمیگذاریم چون دلیلی هم نداریم میدونی چرا به حساب نمیتونیم بذاریم چون این مسئله چیزیست که برای همه رخ میده حتی اونه که تو شبکه منفیان حتی اونه که مستقیما متصل به شبکه منفی هستند دوچار بدبیاری میشن دوچار خیلی مسائل دیگه هم میشن بنابراین نمیتونیم ملاک این قضیه رو ملاک این مسئله قرار بدیم ولی وقتی شما مدرک دارین که اینجا، این, این جریان آرتروزه، این و وزیعتشینه شما اینطوری کردین شده وزیعتشین، مدرک داریم ثابت کنیم ثابت میشه که این از عمل شما حالا میگیم که نه این هم اتفاقی بوده میگیم خوب، بیایم 10 مورد کار کنیم شما میبینید که مثلا شما از اون 500 موردتون چند مورد نتیجه گرفتیم؟ ببخش شما از اون 500 مورد چند مورد نتیجه گرفتین. نتیجه گرفتیم درسته؟ بله حالا ما آخر دفعه آمار جمعی میگیریم دیگه خب ببینید این یک چیزیست که میبینیم که خود یه موردش اتفاقی بوده دوتاش، تاش چهارتاش، تا. ولی یه سری موارد هست که از تو روزمرگی من نمیدونم اگه از اینجا برم بیرون اتفاقی بیوبته این به خاطر اینه که مثلا ما متصل به شبکه مثبتیم یا نه هیچ مدرکی یا دلیلی تو دستمون در واقع نیست و نمیتونیم روش تحقیق و بررسی چیزی داشته باشیم ولی اینو میتونیم به صورت بررسی علمی روش داشته باشیم ببخشید, ببخشید. این اشع... شبکه منفی نمود اینیش مثلا چه اتفاق ممکنه باشه؟ ببینیم بحث بعث... حملاتی که وجود داره عمدتاً حالا اینا رو در... چون در دورهای بعد صحبت می‌کنیم مسئله رو که هست قوانین مختلف خاصه خودشو داره. بیشتر درونیه. قاطی شدن و مسائل درونی، یه حالتای درونی صرفن که حالا روی چیزایی که پیش میاد در آینده می‌ریم، راجع بهش صحبت می‌کنیم، قوانین داریم. مثلا تو شبکه مثبت بودن یا شبکه منفی بودن چه مسائلی رو تبعات طولانی مدت چجوریه؟ اینور خب آرامش اون بر استراب نگرانی استراب افسردگی ترس و, و یه سری چیزایی به این صورت امکان نداره کسی تو شبکه مثبت باشه به افسردگی برسه حالا یه سری نمیدونن که الان افسردن با این حساب زیر علمه چی بودن ولی نمیدونیم چه کردیم یعنی حتی دا این حب مثلا اضطراب ابسوردگی ترس، وحض قاطی شدن‌های درونی عمده ای این مسئله است تشتت‌ها و مادرهایی که باهاش برخورد می‌کنی و امکان نداره که چیزی زیر شبکه منفی باشه برسه به آرامش برسه به نمیدونم اجدایی که عکس اینه ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون یعنی قاطع منده بعد ترس و حوز از ترس استرا پیش میاد نگرانی پیش میاد بعد اینکه پیش میاد ابسوردگی میاد بعد اون که میاد این میاد بعد اینا قانون قانونمنده و بیشتر این مسائل مسائل درونی است حملات حملاتی است که درونی است درون ما رو مورد اسابت قرار میده نه ماشینمون پنچر بشه خب بشه کاش بیرونی بشه بیرونی بشه, بیرونی بشه. بهتره ترجمه می‌کنید مثلا کسی که افسورده میشه کسی که افسرده میشه در واقع روش خط کشیدن از دور خارج میشه حالا میگن تعریب مرگ نامحسوس و اینا رو دیدین که اون تشاثر جریانات رو وقتی همه بدن رو میگیره مرگ نامحسوس اتفاق میفته سه نوع مرگ داریم مرگ نامحسوس مرگ نامحسوس است که همه وجود فرد این قضیه میگیره بعد حالتی که پیش میاد حالتی این پیش میاد که میبینه براش مفهوم نداره میشنبه براش مفهوم نداره میشه مثلا این مرده متحرک سومون آمیون اوميون فهم لایجوون اینا اینا دیگه از نظر معرفتی قابلیت درک معرفت نداره چیزی چی براش معنی نمیده بگو فرزندت می دونه فرزند یعنی چی ولی چه هیچ انگیزشی در او ایجاد نمیکنه او کمال میدونه شما چی میگین ولی در او انگیزش ایجاد می میشه. لذا در واقع میره از اونم میره اونور از اونم میاد اینور و در واقع مثل یک مورد متحرکه. برای همینم هم هست که یکی از تلاش شیطان یکی از تلاش شبکه منفی اینه که انسان به افشردگی برسه. اینها انسان رو این دوتا را که گفته این اون میاره اون میار این میاره اون میاره, میاره. انتاج میشه افشودگی رو فرد خط. یک خط از دور، خارج میشه، بود و نبود، آدم افسرده ال سویه است باشه، نباشه، میدونید اینه که مثلا ماجره هایی چیزی تا از هیچ تششوه هیچ تششوه یا موجودات غیر که آشنا میشین چیزی در نفوذ نکنه فقط درابطه و در و موجودات این هست درابطه این مثلا تصویه و فیاره که خواهاتی که مثلا به سلامت جسم خود درمان خب اون کار زمینی قانون زمینی خب شما دارید تو خیابون راه میرید مادام که در خیابون دارید راه میرید در معرض سانهه قرار دارید شما پشت ماشین نشستین، پشت ماشین نشستین. یعنی من قبول کردم که زمانی که میشینید استارت میزنید یعنی من قبول کردم از اینجا که راه افتادم بم بزنم دی نمی‌دونم هزار تا مسئله دیگه همه ها رو می‌کنید ولی می‌بینید که بازم سانحه پیش اومده بی قا... کار زمینی قانون زمینیه و هیچ فرق نمیکنه از بالا تا پایین همه کارای زمینی و قانون زمینی شامل حال همه ها بوده مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ شرکت کردن شکاش خوردن زخمی شدن خب اگه قرار بود خب یه چیزی میدوند که آقا دیگه این فرض کنید شکست نخورن نمیدونم جنگ نه این کار زمینیه باید کار زمینی لسل الانسان الا ماساها با کار چی بشه؟ با کار و تلاش و, و جاه دوفی سبیل الله جهد در راه خدا جهده راه خداست ولی جهت میخواد تلاش میخواد کوشش میخواد این جلو بره شما نمیتونید بگید که من یه لایه محافظی بذارم که دیگه ماشینم تصادف نکنه خب این تصادف نکردن ماشین شما مستلزم دقت شما و دقت سایر همشهریامونه درستی یا نه شما رعایت کنی اون رعایت نکنه باز در معرض تصادف قرار گرفتین قرار میگیریم این جوریه در واقع کار آسمانی منظور ماورایی کار زمینی خب کار آسمانی گفتیم چیه قانونش کار ماورایی تسلیم شدن میخواد شاهد خب مثلا شما میخواد از این طریق یک کاری انجام بدی شما برای این پونسد مورد تلاش کردین زور زدین چیزی هیچی علمتون به دردتون خورد تجربتون به دردتون خورد روابط اومی برای, برای این که آره دیگه افراد ولی تو خود این قضیه هیچ خب لذا کار اگر ما بخوایم کاری رو از طریق ماورایی انجام بدیم تسلیم شدن میخواد شاهد همون تسلیمه اگر کار زمینی باشه اون کار زمینی تلاش میخواد قانونه للانسان انسان ما سعا به هیچی نمیرسین مگر اینکه براش تلاش کرده باشیم درست شد یا نه این فلسفه اسلام و تسلیم و مسلمانه و منظور اینه که خودت یه سری کارا هست زور میزنی اونا کار زمین است اما ای یه جای بعد بخوای بیای نمیتونی به جایی نرسد کس به توانای خیش الا تو چراق رحمتش داری پیش از اون جا به بالا اگه بخوای بیای. قانون قانون تسلیمه خب قانون قانون تسلیمه مسلمان میتونه بیاد کسی که تسلیم شده منظورم مسلمان 7 میلیاردیم هر کسی میتونه تسلیم میشه ها خب برداشتی دیگه نکنیم هر کسی میتونه از این 7 میلیارد انسان تسلیم میشه خب درسته یا نه بنابراین در این صورت تسلیم شدن اون مسئله هم ایجاد میشه حلقه اتصالش برقرار و کار انجام میشه حالا شما البته این مال ترم بعد میتونیم بهتر صحبت کنیم بعد از که شما کامل تجربه کرده باشین تجربه کرده باشین بعد بهتر میتونیم صحبت کنیم شما ببینید اون کاری رو که انجام دادید فقط یک راه داشته تسلیم شدن چون از ازتون سوال کنیم آیا علمتون به دردت خورد میتونم بگید نه تجربه نه زور زدیم نه کلاش کردیم الان کسی میتونه زور بزنه یه موردی از این موارد رو انجام بده؟ نه خب جانم کار زمینی چیش تصادفیه؟ شانس رندوم، احتمال این هم دخالت داره ولی منظورتون چیه؟ اجازه بدیم من میکروفون رو بدم خدمتتون ببینیم که منظور شما اون میکروفون نزدیک ببخشید منظور شما اینه که اگر که ما یه کاری انجام میدیم روی زمین مثلا تصادف میشه این تصادف یعنی واقعا تصادفیه به صورت رندوم اتفاق افتاده یعنی مثلا یه چیزی میگن کارما کارما نبوده ببینید بحث کارما بحث مفصلیه عمل و عکس عمل و به اصطلاح باز هیچ مدرکی نمیشه ارائه داد که این تصادفه این ضرر و زیانه مال نمیدونم چه چیزی بوده ممکنم از باشه عمدتا اینها به صورت برگشتهایی هست که درون ما ازش به چیزهایی رو برخوردار میشه حالا یا مثبت یا منفی برخورد‌های تششعاتی است عمدن حالا اینا رو باید متاب بشناسیم تششعات اینا رو بشناسیم و عمدتاًشون جایز نمیدونم دقیقا اینکه الان بریم ماشینمون پنچر شده باشه این ناشی از کار یا نه ولی پیامدهای های تششعاتی این قطعا وجود داره پیامدهایی هایی که ما تششعاتی دریافت کنیم یعنی در روح جمعی دیدین که زبان انسان زبان تششعاته درست شد یا نه منتها چونی زبان تششعات زیاد برای ما باز نشده بوده قبلا تصور کردیم اینه که مثلا پس کنم ماشین ما رو دزدیدن حالا بینیم ما ماشینی کی رو دوزدیدیم و ممکنی ما اصلا ماشین رو کسی رو ندازده باشیم خوب ولی میبینیم که این محضله اتفاق افتاده اما پیامدهای تزشواتی اجتنام نپذیره یعنی دریاب میکنیم مثلا شما به عنوان مثال من خدمتون بگم یک کسی رو نمیبینید که اعمال و رفتارش منفی بوده باشه بعد ببینیدش که آدم، آدمی که آرامش داره میشه همچی چیزی؟ نمیشه پس این ماجرای عمل و اکس العمل ماجرای کارما ماجرای قانون تاثیر متقابل اینها چیزایی داره اینطوری اون کار رو میکنه اگر بریم درونش توی جهنم زندگی میکنه ولی شما ظاهرشون بینیم که بله پلان و بیساره همه چی مرتبه اما درون در و داغونه استراف تو جهنم قاطی در تاثیر ویروس های غیر ارگانیکه نمیدام هزار تا مشکل و چیز داره که حتما این تجربه رو دارید شما یعنی حتما دارید الان یک مراجعه بکنید به تجارب خودتون میبینید که این تجربه رو دارید این آدما روی خوشی رو نمی‌بینن روی سعادت رو به معنای روی سعادت ممکنه ما نگاه کنیم ببینیم که بله به به چه تشکیلاتی بعد بگیم خب این آدم سعادتمنده ولی درونش که می‌بینیم در واقع در یک جهنمی زندگی میکنه و روی آرامش و خوشبختی رو نمی‌بینه یه آدمی هم ممکنه شما ببینید که هیچ چی نداره ولی درونش راحت، آسوده خب، این، ایناست ماجره بیشتر تششعاتیه به نظرم خب، گزارش چیزی دارین برای دوستان بشنون؟ جانم؟ بله پس این پیامدهای منفی؟ بله ببینید، مسلمان هیچ کسی خودشو بد نمیدونه ولی پس چرا؟ دوستی دیگه من دیگه اندازه دوز نمی‌کنه خب اون بله ده ده. بله ده ده ولی ده. ده. بله کار خودش رو توجی نه, نه، شیرا اونم که دوزم البته من منکر نمیشم که بعضیا بگه من نه من کار بعدی میکنم ولی توجی میکنه میگه بله من فلان ال توجی بله من بله ببینید اینا رو من ترم بعدی جواب از ترم بعدی در واقع اینا مال ترم بعد بوده مقدمات یاد دارم بعدا متوجه میشیم چرا فقط خوب بودن یعنی خوب بودن اینکه که مال مردم رو نبردن و دزدی نکردن و نمیدونم این و این کافی نیست ترم بعد ببینید که این همه صفر امتیاز داره ببینید من آدم خوبی هم. آزارم به کسی نمیرسه چند امتیاز دارم؟ و میگن خود تو انسانی درسته اینا رو بعدا میبینیم که زبان کارشناسی داره اگر حالا من این کار منفع را انجام میدم به دیگران ظلم میکنم اینا میشم انسان پست انسان انسان متعالی انسان متعالی اضافه کاریایی داره اونها رو بعد میام تعریف بکنیم اما من به کسی آزارم نمیرسه خب نمیدونم میدونم نمی کنم نمیدونم رشوه نمی گیرم امتیاز دارم قرب خب رشوه نمی گیرم اگه بود رشوه بگیرم مگه باید دزدی بکنم مگه بود آدم بکشم قا آدم, آدم نکشتم چند امتیاز دارم خب تازه تازه میشم انسان تازه صبر امتیازه... لذا از اینجا به بعد ماجره ماجراهای خاصی پیش میاد و تعاریف خاصی داریم اجازه بدین در جای خودش می, می رسیم الان ماجرای این هوشمندی رو به سر و سامان برسونیم، ببینیم هست نیست تا سر جای خودش وارد بحث های خود شناسوینا میشیم اینشاالله همینا پاسخ داره بفرماید اون مکروفون اگه میشه بدین خدمت چون بالای بالا با. یکی از دوستاممون یه بچه ای داره این تازت دستگاه اومده دو سه ماه یک ساعته که به دنیا مده. دو سه ماه از این بچه بوده که تو دستگاه بوده. خوراکش هم خیلی کم بوده اینا. یک کپت من بهش... تششیو میدم چند روز پیش اومد پیش خیلی تشکر کرد کدش هم بچم هم میخنده همین که اشتعاش هم شده قضا میخوره نه قضا نمیخوره بله خیلی ممنون همین یه مورد رو کار کردین مورده دیگه هم کار کردم مثلا مادرم دلش درد میکرده مثلا تششیو دادم خوب شده اینم ولی خب این خیلی مهم بود چون خودشم. واقعا مثلا پدره خوشحال شده بود و بله، تشکر بله. میکنم خب بعدم میخونده انگار خدا دنیا رو برمید بله خیلی ممنون موسیقیر. ممنون. خب بریم سراغ یک مقدار از مباحث درسیمون ببینید بعضی ها بیرون ریزیشون مفصل میشه و باید توجیب بشن که در واقع این بیرون ریزی داره کاری رو براشون انجام میده که به نفتشونه دیگه اگه خیلی بخوان راحت طلب و مسلح طلب باشن نهایت اینه که راهاشون کنیم بگیم باشه بریم اما این شانس رو از دست میدن که در واقع اون کار اساسی و اصولی روشون انجام بشه و صورت دیگه. خب چند تا نمونه رو با هم صحبت میکنیم این صحبت راجب مواردی میکنیم که فرد خوب شده ولی یه دفعه بینو که حالا بعد از نصف روز روز دو روز یه هفته هرچی یه سقوطی انجام میده داشتیم اینطوری؟ بارد. یک دو سه بله داشتیم بله بسیار خوب البته اگه جزواتتون رو خوب مطالعه کرده بودین دلایلش رو یه مقاری دستتون تو میموند دلائل بازگشتی بیماری یه دلیل فنی داره یه دلیل نعام داره دلیل عامش اصولا شک تردید انکار ناسپاسی کتمان و اینجور چیزها نسبت به شبکه البته منظور ما بعد از اینه که اثبات شده ها نه اینه که خواهد در دم اومدیم کدوم شک نداشتیم کسی بوده بدون شک بیاد داخل فردی که براش کار کردیم یا کار میکنیم خودمونم هم همینطور فرق نمیکنه دیگه چند نفر از این سیستم درمان گرفتن دستشونو بلند کنن خودشون کسی کسانی که خودشون روشون کارایی شده خب ببینید اینم شامل حال خودمونم در واقع میشه به مثللا بعد از اینکه که نتیجه گرفتیم بعد از آزمایش و نتیجه گرفتن خب بعد نتیجه میگیره بعد میگه نه از این بود از اون بود یعنی میدونه که در واقع مسئله واقعا از کجاست و اگه قراب و خوب بشه تا حالا شده بود ولی دوچاری شک مرضی میشه شک و تعدیدی انکار میکنه نه از این نبود میگه که مثلا کسرشن کسر کسرشن میشه اگه من میگم از این مسئله بوده همه میگن خرافی هستی خب اینا خیلی حساسه خیلی تعبیرهای خطرناکه مثلا این تعویره که همچین فردی خیلی خطرناکه که در واقع بگه با من اگه بگم که از این مسئله همه باید میگن که تو آدم خرافی هستی و دوباره حالا به هر شکلی که مندر بشه به کتمان ماجرا نمیدونم حالا عمدتا وقتی ما این نجیه میگیریم این چنینی باید شکرگزار باشیم عدم شکرگزاریمون میشه ناسپاسی خب باید بگیم شکر واقعا کمک شد و شکر و برای شکر گذار باشیم در این موارد احتمال بسیار بسیار زیادی وجود داره که فرد برگرده سر جای اولش خب از نمونه این مثالا رو من خدمتون بگم مثلا فرصمونه تموری در چشم اینا نمونه چند سال قبل و بعد از کار کردن این تمور محف شده اکس ها خب رنگی و غیره همینا مشخص ده. بعد از این مسئله گفتن که نه بابا عرضی نه بوده آخه مگه میشه فلان مثال این مال نمیدونم فلان قضیه بوده. این مال بوده دوباره در عرض دو هفته این به فاصله دو هفته خوب شده به فاصله دو هفته برگشته سر جای اوله اول اولش خب و ورداشتن چشمشو تخلیه کردن توجه میکنین در حالی که عکس ها داره نشون میده که یک اتفاقی افتاده مگه میشه این مسئله به این صورت محو بشه و به این صورت ظاهر بشه غیر ممکنه خب حالا از این چیزا ما خاطرات تلخ زیاد داریم خاطرات تلخی که این بقایه رو نشون داده حالا حال مجبور هستیم که عنوان بکنیم اما از این مسئله که میگذریم میرسیم به مقاومت دادگاه ویژه الا توضیح میدم دادگاه ویژه چیه دادگاه ویژه که در ناخودآگاهی، این در ناخداگاهی هست مقامل دادگاه ویژه در مقابل بهبود بیماران که مشکلاتشون سایکوسوماتیکه بیمار بیان روانتنی اینها افرادی هستند که رفتارهای اینو ترم بعدی مفصل راجع به صحبت داریم و کار داریم سه تا حلقه داریم یه حلقه مربوط به این مسئله این افراد افرادی هستند که دارای رفتارهای دوگانه هستند رفتارهای دوگانه مثل تظاهر و وانموسازی سرکوب سازش اینا در مقابل مثلا انطباق با مهید رفتارهایی دارن به این صورت مثلا میگیم که وانموسازی تظاهر اینها ازا با افراد ما برخورد می با این افراد که برخورد می خب همچین تمایلی به اونا نداریم، خوشمون ادش نمیاد ولی مجبور میشیم چیکار کنیم؟ تظاهر کنیم که خیلی هم خوشحال شدیم از دیدنشون. سلام تو کجایی فلان بیسار نمیدانم چی قربونت برم؟ از این حرفا حالا تو دلمون داریم هرس میخوریم که چرا نمی خفش کنیم. خب دلیم تو دلمون داریم هررص میخوریم، ترکپ داریم سازش داریم. مجبوریم با شرایطی مثلا تو محیط کار شرایط اونجا مسئله اونجا وفق مراد ما نیست ولی داریم چیز میکنیم با همه سلام علیک فلان خوش و بش هرکی رئیس هست میگیم چشمون هست میگیم, چشم میگیم چشم خود داریم ترکوب میکنیم سازش میکنیم تو زندگی همینطور خب همه را داریم هرس میخوریم درسته؟ هرس خودخوری در اون ریزی اینها رو میگیم انرژی پتانسیل منفی و انرژی انرژی پتانسیل منفیه و تلانبار میشه رو هم پتانسیلش از این نظره تلانبار میشه رو هم پناره بعد به یه حدی میزانی که میرسه به جایی ارجاع میشه ما بهش میگیم دادگاه ویژه این دادگاه ویژه در ناخداگایه ما یه سیستمی داریم البته نه همه از نظر ماست سیستم خودپاداشدهی سیستم عجیب غریبی داریم سیستم خودپاداشدهی یکیش یک بخشش دادگاه ویژه دادگاه ویژه وقتی ما این پروندهمون سنگی میشه ارضی میشه به دادگاه ویژه تشریف بیارین دادگاه بله این همه واسه انرژی پتانسیل منفی یاد کردی خب بدونه که هیچ دفاعی از ما بخوان حالا علت داره ما مح... برای ما صدره حکم میکنن ما رو محکوم به بیماری هایی میکنن که اسلامش میگه گفته میشه بیماری روانتنی یعنی بیمار روانتنی محکومه ما اون بیماری‌ها رو بیماری دادگاهی میکنیم بیماری‌ای که دادگاهی است. اساس کار این دادگاه اینه مگه انسان اومده روز زمین هرس بخوره، مگه انسان اومده روز زمین می‌دونم خودخوری کنه، یعنی می‌دونم چیکار کنه، می‌دونم بی‌سار کنه، غم و غصه و فلان و سر حرفا، لذا ما در این دادگاه محکوم میشیم و بیمار این دادگاه در واقع محکومه. حالا وقتی می‌خواد می‌خوایم نجاتش بدیم، این دادگاه در مقابلش یه مقاومتی نشون میده و ما به نمودارهایی می رسیم خب یه به نمودارهای می رسیم این نمودارها این نمودارهایی رو که ما بهش می رسیم اگر اینجا رو بگیریم به بیماری و اینجا رو بهبود نسبی وقتی که ما میایم برای فرد کار می کنیم یعنی این رابطه رو برقرار می کنیم و میا اون رو مثلا میاد اینجا خوب میشه خب خوب میشه مدت زمان ت یک حالش خوبه میتونه نصف روز یه روز یه هفته نمیدونم دو هفته سه هفته باشه بعد یه دفعه سقوط میکنه حالش بد میشه برگشت میکنه خب در این صورت خب در صورتی که اون ماجراهای شک و ها نیست ما درو صحبت میکنیم در این صورت ما اینجا با دادگاه با مقاومت دادگاه ویژه مواجه میشیم که در مقابل بهبود فرد داره چیکار میکنه مقاومت نشان میده اون اونو برمیگردونه تا این مرحله و میاد پایین ها این نموداره که داریم صحبت میکنیم نمودار ای نمودار ای بیماران روانتنی یا از نظر ما دادگاهی خب ما تعاریفمون وقتی بیم تو ابعاد مختلف تعاریف ما یه مقدار با تعاریف بیرون تفاوت داره منطقه ما انتباقهاش هم می نویسیم حالا تا زمانی که بحث کارشناسی روی این موضوع ها صورت بگیره فعلا هر دوتا دو دو رو که چرا چگونه اینا رو که دوستان داشته باشن حالا در اینجا بیمار میگه من برگشت کردم ولی وضعیتم نسبت به روز اول بهتره این میشه نمودار ای بیماران یعنی اگه میگه من برگشت کردم ولی وضعیتم بهتر از روز اوله ما نمودار ای این دسته رو خواهیم داشت حالا اگر روشون دوباره کار بکنیم دوباره به وضعیت بپود میرسه و زمان ته 2 رو خواهیم داشت که زمان ته 2 از زمان T1 طولانی تره و اون حالا اگه دفعه پیش یه روز دو رو سه روز چار رو حالش خوب بوده الان به ما اطلاع میده که مثلا دو هفته خوب بودم سه هفته خوب بودم بعد دوباره یه افت کردم ولی اگه دقت کنید اینجا دوباره از اینجا بالاتره و وضعیدش اینم از این بهتر بهتر و این دوباره اگر کار بکنیم دوباره اگر کار بکنیم میبینیم اینجا زمان چی میشه؟ زمان طولانی تر و اینجا برگشت خیلی خفیف دفعی نی 6 ماه دیگه یه روزی برای نیم ساعت خوب یک شوكی رو داشت و بعد تموم شد و رب پکارش این روند بسلاه روندی رو که تی کنه روند حقیقی بسله بهبودو در واقع اینطوریه و داره به تدید میره بالا چند نفر این تجربه رو کردند در عمل بش رسیدن یکی دو سه چهار پنج شیش هفت هشت همینجور خوب خوبه خوب برای همین گفتیم اصرار داشتیم که تجربه بکنید بجنبید کار کنید کار کنید که وقتی صحبت می‌کنیم ملموس باشه براتون حالا شما بدونه که این تعریف رو بدونید خودتون خودتون اقدام کردید بدونه که تعریف رو به صلاح میدونستید خودتون بهش رسیدین که در این صورت این جواب رو خواهیم گرفت چونم؟ شما تجربه کردین؟ بچه چند ساله؟ ده ساله اون دیگه یه مقداری بازم مثلاش فرق میکنه ولی راجب اطفال و اینا اینجوری شما برخورد نمیکنه ولی بچه ده سال میتونه تحت خودخوری و نمیدونم این تضاده که صحبت کردیم قرار بگیره درست شد؟ و توی ماجرا مثلا مثل زخم مده، مثل تیروی، قدیم میگفتن، قنباد و اینا میتونه، نگه کوریدرسه، نمیتونه، حالا خب تیفای وسیع رو ما میتونیم داشته باشیم که عمدتاً از نظر ما دازگاهی هستن خب و جوابای خوبی هم شما میتونید داشته باشین روی موضوع ها جانم که از استرس از؟ شما میاید میبینید که بعضی هاش دوباره آره اصلا یک بخش از اونها همین همینطوریه یعنی شما وقتی که میاید دو سری کاره انجام میدید میبینید که بله همین ماجراست و پوست هم یکی از محل‌هایی است که دقیقاً مورد اصابت قرار میگیره دقت می‌کنید که جانم جانم در مورد اونام ممکنه که این قضیه به باشه مثلا کم که گفته میشه ایندام اشتاهای عصبی نمیدونم اشتاهای کازب البته در اونجا هم با های دفاع روانی اونا هم پیش میاد به هر صورت امکان این قضیه وجود داره البته در این موارد بیشتر قلب و میده و ندام تیروید و ندام روده و اینها در مرض چیز قرار میگیره ولی غیرموتمل نیست که به صلاح بخش های دیگه از این مسئله در امان باشند کمایی که هیچ کدوم اینا نیست می که دردهایی هست که هیچ آثار فیزیکی نداره مثلا درد، درد، درد که درد میکنه به پزشک مراجعه میکنه میگه که عصبیه میگه عصبیه، خب، هیچی پیدا نمیشه و صحبت عصبی بودنش، عصبی بودن یعنی همین بحث دادگاهیه، روانتنیه خب یه نمودار دیگه رو مورد بررسی قرار میدیم افراد بیش و آل به جز گروه جزء ذهنی طبقه بندی میشن از نظر ما و در این مورد بیمار محسوب نمیشن سوپر حالا دو دسته بکنیم یه سری صرفاً بیش فعالا فعالیت بسیار زیاده بیش فعال سوپر اکتیو ان یه دقیقه از اون سوپر بودن تمرکز و اینا هم ندارند و خلاصه یه جوری روی یک مسئله خاص نمیتونن زوم کنن کارشون رو انجام بدن در مورد اونها به اصطلاح تششح دفاعی مورد نیاز البته فرا هم کار بکنید ولی عمدتاً کار به تششح دفاعی مختصن گروه دومشون از نظر ما هم بیماری محسوب نمیشه مخصوصاً صرفاً سوپر اکتیو باشه اون به ما میگه شما مشکل دارین خب میگه که شما مشکل دارین که اکتیب نیستین خوب بله حالا در اون مورد نداشتن تمرکز شما به سلا میاید ببینید که بیشتر به تششت دفاعی میخوره جز مشکلات ذهنی هست حالا راجب ذهن و روان اینا یه تعریف کوچیکی هم میدیم که باز ببخشید هلون نمونه اولی که شما فرموگید در مورد بچه هایی که نیستوشن ست خونه کنه مثلا چه چیدش سفر تیسوش چیه مشکلی دیگه؟ مشکلی دیگه یعنی اون بیماری نداره که خیلی تیزوشه داره بچه هستش که مثلا سه سالش چهار سالش خیلی بیش از اندازه متوجه میشه خوب جز رده تیزوشه خب این ما مرزیم یا اون مرزه چیجوری من اینکه بیماری نیست خب میپهمه خب بیماری نیست که این اصولا موارد ذهنی بیماری نیست مثل مثلا وصواز, ما به اون میگیم تو زیاد دستتون میشوری و ما میگه شما دستتونو کم میشوریم خب معلوم نیست که بیماره ما به اون میگیم تو, تو, تو توهم داری؟ اون میگه نه خیر شما مشکل دید دارین همه چی رو نمیتونین ببینین خب معلوم نیست که مریضه سپر هم به ما میگه که خود شما تنبلید من نرمالم لذات تو ذهنی یه خورده موضوع فرق میکنه فقط یک الگوهای ما داریم که مطابق با اون الگوها است که یه سری چیزای رو میتونیم تعریف بکنیم خب جانم جانم بیماری هستن که مثلا مثلا ادم میخواد اتصال بر بعد اصلا چیزی نداره آگاهی نداره که مثلا آدم بتونه از راه تلفن اینا اینا رو چه جوری بهشون آدم پیششون هم نمیتونه بره بهشون وصلشون میکنه خب چطوری یه طرف, یه طرف. یه طرف. اطفال ها سالمندان ها نیم دونم همین داره. بکیم که بشینیم خودمون بهش تمرکز بکنیم؟ بشینیم هم نه همون در حال راه رفتن و نشسته و استاده و بشکن زنان یه بشکن برای اون میزنیم <تصفح> یعنی یه بشکنم برای اون بزنیم تمومه باید بعد بعد گزارشش رو بگیریم ببینیم که این بشکنی که زدیم زحمتی که کشیدیم ببینیم ندیزهش چگونه بوده حالا در مورد این افراد یه نفر رو از پیرامونشون می که به ما گزارش بده یعنی اون فرد زیر نظر داشته باشه ببینه که خب این تفر، این تالمان اینا چی شده؟ چه به چی رسیدن؟ استاد شما فرمودین که اگر کسی پیشش باشه از طریق اون نمیشه بهش چیز کرد؟ ببینید، ببینید نیازی نیست که کسی پیش اون بشینه دستشو بذاره رو کله او یا کاری انجام بده من کار شما دارم آسانتر میکنم درست. دیگه درسته شما میخواد کارتون سختتر بشه؟ نه اگه اون... کسی اون کارو بکنه مشکلی, مشکلی بیش میان مشکل خودش در معرض بیخود خود اون قرار میگیره درسته. و شما اون که لای محافظ نداره اونو که میخواد بشینی دستشو بذاره روی کله اون درسته. در اشتراک قرار میگیره شما دارید اون نداره لازم اون فقط ک ابزرویتوری بکنه و مشاهده بکنه و نگاه بکنه و ببینه که چی میشه زیر نظر بگیره دیگه لازم نیست که دیگه یه نفر بشینه دست روزه رو کله اون لازم نیست اگه میخواه کار رو سختتر بشه خب حالا بریم سراغ یه حالت دیگری که اینجا دنبال میکنیم این نمودار بیه نمودار بیه بیماران روانتنی نمودار B فرقش با نمودار A ای در این هست که اینجا وقتی برگست صورت میگیره وضعیتی که پیش میاد اصلا خیلی بدتر از زمانیست که شروع کردیم خب بنابراین توی این نمودار وضعیتی که پیش میاد اینه که ممکنه اون دیگه دنبال ما نیاد دیگه دو پاداره دو پا مغز کنه فرار و برقرار حاجی بده حالا هرچه ما بخوایم چیز بکنیم یه جورایی دستون بهش نرسه اگر از قبل بهش اطلاعات بدیم یعنی به افراد از قبل اطلاعات بدیم معمولا روند برینه که اگه بگیم نمودار A داریم B داریم چی داریم چی داریم افراد این نمودارها رو نگاه میکنن رو برای خودشون در نظر میگیرن این درسته یا درست نیست یعنی همه میرن میشینن میگن که وای مال من اینه و بعد الان میاد الان میاد همچنین میگه اومد اومد اومد اینقدر میگه الان اومد اومد اومد که بالاخره بله سر خودش بیاره و لزمانه میتونیم اطلاعات بهشون بدیم مجبوریم بگیم اول برو تجربه کن دو بار سه بار تجربه بکن و بعد به ما گزارش بده هرچی شد گزارش بده تا ما باید بگیم چیه مجبوریم این کارو بکنیم و از این عده یک تعدادشون به ما گزارش میدن که بدتر شدیم اینجوری شد یه عده گزارش نمیدن دیگه سراغمون نمیان میگن که این کار رو کردم بدتر شدم یعنی تعبیرها اینقدر دور از واقعیت خودشه لذا به هر حال اگر که این دوستان این افراد ادامه بدن دوباره کار میشه برمیگرده به سلا به این وضعیت اگه ادامه ندن که خب برمیگردن به وضعیت اولشون اگر که با این قضیه ادامه بدن به این سطح میرسن و زمان ته رو که از زمان ته یک بیشتره تجربه خواهند کرد و دوباره چیزی و بعد زمان ته سه، ته حالا ممکنه با دو تا سه تا چهار تا اینا دیگه یه ذره این ورانبر ولی دیگه یه اتفاق افتاد ما میدونیم که بقیه یه چیه یه مسئله که باید بگم خدمتون اینه که آیا امکان داره یه کسی اتفاقی به اینجا برسه؟ بله؟ و بعد سقوط کنه؟ نمیشه که اتفاق ما نداریم اتف... کار اتفاقی و دیمی توی این مسئله نداریم باید یک چیزهای پیش بیاد اگر شما بدونید اینو قانون برای خودتون بدونید اگر یک فردی برای ده دقیقه مثلا فرس کن گفت من بهتر شدم بدونید که قابلیت درمان اینجا وجود داره قابلیت اینجا هست این کار است که این ده دقیقه شده حالا اگر اتفاقای دیگه میوفته ما باید بیم اتفاقات دیگه رو بفهمیم چیه چی شده و چه مسئله هست که به دنبال این مسئله متوجه میشیم که این افراد رواندی رو تیه میکنن که اینطوریه این نمودار بی روانتنی دقیقا مثل اینه که یه زندانی از زندان فرار بکنه بگیرنش خب اینجا بگیرنش برش گردونن زندان یه مجتمال تمیز و حسابی خب یه ضرب و شتم تمیز و حسابی بهش بزنن و حالش رو جا بیارن که با چی فرار کردی؟ یعنی این دسته مقابسلا در محصه حالا اینا همه تعبیر و تفسیرهایی داره ها این اده دادگاه ویژه چرا در مقابلشون انقدر با کنش سختی نشون داده و حالشون رو جا آورده. خب اینا همه اگه بخوام تعبیر و تفسیر کنید داره میشه راجبش خیلی صحبت داشت ولی برای ما الان مهم نیست ما میخواهم اینوم که چی به چیه چند افرین الگو رو تجربه کردن شما کسی دیگه نداشتی؟ معبولا خوشبختانی نمودار کمتر از اون یکی هست خوشبختانه خوشبختانه چیانم؟ در مورد بیماری های تایی صادقه، در مورد بیماری های جسمی صادق نیست؟ نه، الان نمودار بیماری های جسمی رو میکشم برای تو برای جلوگیری چی باید؟ جلوگیری چی؟ نشیم طور ترم بعدی بحث تعریفش و چی شو نمیدونم ماجره هاش از خودمون نمیتونیم از بین ببریم ترم بعدی حلقه و مسائلی که داره رو مورد بررسی قرار میدیم خب هرگز نمیتونیم شما سازش رو از بین ببریم ظرفیت باید بره بالا عرفان اینه عرفان ظرفیت رو میبره بالا حلقه و مسائل و تدای تعریفای خاصش رو میرسید خب اگر اجازه بدین بریم سراغ یه نمودار مهم دیگه که اینا براتون حتما پیش آمده یا پیش میاد لذا خواهش میکنم خوب دقت بکنید و توجه بکنید خب یه نموداری داریم اینطوری کار میکنیم کنیم خوب میشه تا اطلاع ثانوی اطلاع ثانوی ممکنه 5 دقیقه یه ساعت دو ساعت یه هفته دو هفته یک ماه باشه دوباره سقوط میکنه سر جاش کار میکنیم دوباره خوب میشه تا اطلاع ثانوی اطلاع ثانوی دوباره پنج دقیقه 10 دقیقه نیم ساعتی یه روز دو روز یه هفته یک ماه دو ماه دوباره سقوط میکنه جای اولش دوباره این مسئله شروع میشه یعنی در واقع مثل این که کوکشون بکنیم حالا که کوکش در بره خوب کوکش در میره دوباره بعد میره سر همون جایی که بوده این نمودار مشکلات بینشی حالا علتهایی که مثلا چرا بیمار میشویم چرا بیمار میشویم های منفصلی داره در هر دوره یکی کی دو سه تاشو چیز میکنیم اولا خدا ما رو بیمار میکنه یا نه پس چرا به همی رسیم میگیم خدا بد نده <تصفيق> ته چند دوره میایم ته چند دوره عجله نکنیم میدونم عجله نکنیم ته چند دوره فعلا الان این دوره میخوایم هوشمندی رو تست کنیم ببینیم از حد چیه بعد ته دورهای مختلف میایم تو خودشناسی دیگه هر بخش به بخش چرا بیمار میشویم مرده بررسی قرار میدیم بعد آخر قضیه متوجه میشیم بیماری زمینیه و ما اصابه کرمیم سیعتن فم نفسه هر چه بهتون اصابت کرد بمون اصابت کرد از بدی ها از خودمونه و متوجه میشیم که بیماری یک پدیده کاملا زمینی است و این خدا نیست که بیماری میده حالا کاری ندارم تا این چرا بیمار میشویم چرا بیمار میشویم اعزام کردم خدمتتون که میریم جوابش خیلی مفصله جوابی الان نمیخوام بدیم میخوایم بگیم که مسئله مساله هست مثلا یکیش بحث بینشیه خب یکیش مسئله بینشیه خب در ترم این مسئله رو زیر نظر میگیریم و میبینیم که بینش ما باعث بیماریمون میشه فعلا اگر قیمت دلار الان از یک بخشی به یک بخش مثلا همین الان تغییر کنه یه دیت دچار ایست قلبی میشه یه دی دچار مشکلات جسمی میشن چه ربطی چه ارتباطی بین قیمت مثلا نرخ دلار داره با کارکرد قلب اینکه مستقله که خب یه سیستم پمپ الکتریکه با از چهطوره مثلا برقی و ربطی ظاهرا نداره که مثلا قیمت دلار هرچی بشه چرا این ارتباط اینا با همدیگه چیه خب اینا یه های مفصلیه و مثلا فرض کنید ترس از مرگ ترس از فقر، ترس از شکست و همینجوری مسئله مختلفی اینا میتونه که عامل بیماری بشه درسته یا نه؟ شده میشه یا میشه؟ مثلا شما بینید که یه خبر ناگوباری میاد یه نفر مریض شد افتاد کمرش خورد شد نمیدونم به هزار بلا سرش اومد معمولا بعد از این مرگ و میرا میبینید که یه عده ای درسته؟ خب حالا نمونه‌هایش رو اینجا مورد بررسی قرار میدیم اگر فرزن فردی ترس از مرگ که خیلی شایع هست داشته و در یک موقعیت، در یک همچین بحران قرار گرفته و این مسئله عامل بیماریش این شده خب به مرز که اینجا که خوب شده چی خبری موضوعی راجع به مرگ برخورد بکنه دوباره بر سر جای اولش دوباره کار میکنیم دوباره میان خوب میشه دوباره خوبه خوبه خوبه خوبه به محض اینکه با موضوعی تحت این قضیه قرار بگیره دوباره سقوط میکنه دوباره سه باره ده باره ست باره یعنی بین بین این نقاط خوب اینها با هم یه ارتباط چی دارن؟ یک اشتراکی با هم دارن مثلا فرض کنید یه تجربه اینی خدمتون بگم در 7 سال قبل یک موردی رو کار کردیم که پارکینسون بود خب بعد اشون گفت که من خوب خوب خوب بودم تلفن زنگ زد من گوشی رو برداشتم دیدم پسرمه پسرم سلام گفته نگفته گفت بابا شکست شدم و اینقدر نیم بدهی بالا آوردم من گفت و, گفت و گفت و گوشی رو گذاشتم دیدم که دارم می لرزم و دیگه حالا نلرزو؟ خب ادامه پیدا کرده بعد از این هیچی کار کردیم لحظه شویستادار می دام کسی کار کردن تو این موضوع یا نه کسی در این مورد کار کرده؟ کسی شده؟ کار بکنه؟ بسیار ندیجه؟ بهتره خب از کنم خدمتتون که در این مورد خب کار کردیم و دیدیم استاد دوباره اطلاع دادن که اطلاع دادن که چند روز خوب بوده و دوباره شروع شده خب دوباره کار کردیم دوباره خوب شد درست شد حالا البته ما تجربه اینکه که چه جو به چه شروع شده حسمون فراهم می اومده روی مسئله دوباره بعد از چند روزی این تکرار شده بعد رفتیم وقتی بررسی کردیم گفتیم خب اینجا چه اتفاقی افتاده که این چند موردو برگشت شده دیدیم که هر بار تو خونه یا با بلاخره هر به هر شکلی مخصوصا با تلفن راجبه این حادثه راجبه برشکستگی راجبه نیدان پیامده های اون ماجرا صحبت شده دوباره این اتفاق افتاده حالا این بحث مشکلات بینشی تف وسیعه خیلی گسترده و وسیعه هست این نمونه ها رو در واقع داشته باشین و بدونین اطمینان خاطر داشته باشین اگر با همچین ارگوی برخورد کردین شک نکنید که ماجرات چیز دیگری باشه فقط کاری که میتونید بکنید البته وظیفه ما مشاوره نیست ما مشاور نیستیم اصلا کار مشاوری نداریم اما اگر خواست کمک بکنید اینا رو برایش توضیح بدید کمکش بکنید پیدا بکنه که مشکلش چیه؟ در صورتی که مشکلش رو قبول بکنه اون مشمندی هم کمکش میکنه که موضوع یه جوری رعب و بشه از با تجربه هم که داریم معمولا نتیجه بد نبوده خب یه درصدی میپذیرن مشکل بینشیشون رو اینا رو میپذیرن و به نحوی اون وقت روش کار خواهد شد درست شد یا نه داشته از این مورد دوستان کسی برخورد داشته شما بله خب بسیار خوب میبینید که این قضیه در واقع اینطوریه حالا چطوری خوب میشن الان توضیح دادم خدمتتون اگه میخواد کمک بکنید وقت وقت میخواهید بذارید اینجا باید بهشون اینو آموزش بدین این نمودار رو آموزش بهشون بدین و به صلا اینها رو برایش مشخص بکنید که زمانی که سقوط انجام میشه درست اینجا چه اتفاقی افتاده درست اینجا چه اتفاقی افتاده درست اینجا و اینجا و اینجا بعد که نگاه میکنید ببینید که بین اینها یک به اشتراکی وجود داره یه اتفاقی افتاده که بین همه اینها مشترکه و شما اون وقت میتونید از این طریق اون خودش حتی شما نیاز نیست فقط شما اینو کافی بهش آموزش بدیم. اون خودش بهتر از شما میتونه وقت بگذاره بشینه فکر کنه فکر کنه که کدوم که از این چیزها بوده مسائل بوده اونو کشف بکنه و دوباره به ارتباطش ادامه میده ضمن اینکه ببخشید ضمن اینکه قبول کرده قبول میکنه که اشکال بینشی داره و چی هست و اینا یواش یواش قضایاش به اصطلاح سرسامانی پیدا خواهد کرد اگر دنبال بکنه مساله رو چون این خورده بیشتر از حد معمول کار میبره کشفش، دنبال کردنش، تست بعدیش اینه که دوباره اتفاق میفته نمیوبته اینا یه خورده بیشتر نیاز به بحث و بررسی داره خب ببخشی سوالتون، بفهم این هوشمندی حساسیت طرف برطرف نمی کنه؟ حساسیت چی؟ حساسیت به همین مسائلش، نمونه بارزش که خودتون فرق دید ببینید مشکل بینشی ما برای چی اومدیم روز زمین ما اومدیم مثلا محبوم این نال الله و ان الیه راجعون رو بفهمیم درسته این شرح رسالت ماست خب اینو دیگه اینو اگر من بخوام به من کمک میکنه من به من معنیشو بده کمکم کرده کمکم میشه تو دورها میاد با ارتباطات مختلف با مسائل مختلف تجربه این مسئله مفهوم اناللا و ای ناللا را جنو برای من باز میکنه. درسته یا نه؟ اما تصمیم گیرنده نهایی کیه که باز از اون استفاده کنه یا نه؟ ما رسالتمون اینه بر همین رو коре زمینیم. درسته؟ پس اینو به من کمک میکنه ولی خودش نمیاد مثلا یه کاری کنه که دیگه من از مرگ نترسم. یه دفعه مساله رو حلش بکنه. می‌دونید؟ کمک میکنه، من باید نهایتا این معما رو حلش بکنم. بینش های مختلف دقیقاً میاد به ما میگه که چطوری ما شرح رسالت منو روز زمین متوجه نشدیم برای همین هم قیمت دلار بالا پای میشه من قلبم چی میشه در نوسان قرار میگیره ظاهران ارتباطی نیست اینا این مسائلی رو که میخواد بیاد بگه مشکلات بینشی ما رو در باقی کمک میکنه ولی حلش نهایتاً چی باید تصمیم می‌گیره؟ من باید بخوام او باید برای من انجام بده من تا به این نتیجه نرسم که نمی‌دونم مثلا می‌خوام که در معرفت اِنّا و اِنّا الیه راجعون قرار نگیرم هیچ کاری برای من انجام نمیشه حالا میام بیانیم که این چیزها هوشمندانه است باید باشه و فرق بین کسی که او مفهوم فهمیده با اونه که نفهمیده یه فرقی باید باشه این تاوانشو اینجا پس میده تاوان عدم فهمیدنشو اینجا چیه پس میده ولی اگر بخوام زیر بقلمانو بگیرن بلندمون کنن میکنن. درست شد کمه که تمام این بیماری ها اشکالات خودمونه اما زیر بقلمانو حاضر بگیرن بلندمون کنن مفهوم رحمانیت الهی خب مفهوم رحمانیت الهی اینه که ما اشتباه کردیم زمین خوردیم همین مواردی کرد ولی آماده هستن زیر بغله ما رو بگیرند و بلندمون کنن درست شد حالا هر چند باری که لازمه اون بر خستگی ناپذیره. تا زمانی که ما اون نتایجه رو که بخوایم بگیریم اون نتایج رو بگیریم خب، اگر بحث خاصی نیست من، نمودار بعدی رو صحبت کنم الان چند نفر در جمعمون افسردگی داشتن و الان بهتر شده الان نمودارشم میخوام بکشم. چند نفر خب ببینید این مسئله اینجوریه یعنی این مسئله داره میاد و کار میکنه حالا اون تمایل به خودگشیش اون به تششد دفاعی ارتباط داره اول فرادرمانی رو بدین یک مقدار اوضاع, اوضاع اوال بهتر میشه بعد آگاه پیدا بکنه تششد دفاعی بعدا حالا اون یه مسئله یه. ولی این مسئله الان ما خودمون بین خودمون تجربه کردیم اگرم بگیم با چند نفر کار کردیم افسردگیشون بهتر شده چند نفر کار کردم با دیگران که افسردگیشون بهتر شده خودتونم کار کردین بنابره این دیگه این عصبی بودن و استرس و ببینید در کار کردم خیلی فوق العاده شد شده نتیجه گرفتیم بنابراین خب همین که داریم میگیم که میخوام همینا رو در واقع دهر بریم که بگیم بابا ندیجه داریم و کار بکنیم مثلا تجربه بکنیم ندیجه شو ببینیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم در مورد موارد جسمی در مورد نمودار جسمی و همچنین روانی این نموداراشون اینطوریه یعنی میان کار میکنیم و بعد نوسانی نداره ببینید اینها مثلا ممکنه ما کار بکنیم آنن خوب بشن چند افر داشتیم که تجربه کردن آنن خوب شدن رو تجربه کردن درسته؟ یعنی میبینی که آنی خب عربات آنی تقریبا نمودارش اینجوری میشه نه اون خب آنی خوب شده یکی میبینی که یه روز طول میکشه یکی یه هفته طول میکشه یکی دو هفته یکی سه هفته اما بازی نداره مثلا فرض کن اگه افسورده است میگیم امروز چطوری میگه بهتر از دیروزم فردا میگین چطوری میگه بازم بهترم بهتر بهتر بهتر بهتر بهتر دیگه اینجوری نیست که البته ممکنونه اول بیاره رو به اوج برسه و بعدا روند بعدی بعد از اون پیک و پس سر پیک و که پس سر اینطوریه مثلا میگیم که آرتورز چطوره میگه ما در امروز بهترم فردا میگه بهتر شدم باید, باید بینید که بهتر شدم، بهتر شدم زخم چه چجوره؟ بهترم، بهترم، بهترم، بهترم این نیست که یه رفع نوستان هایی مثل اون بیماران روان داشته باشه یا حالا بیماران ذهنی هم، مشکلات ذهنی رو هم میکشیم ببینیم که چطوریه بنابراین در مورد جسمی و روانی ما این نمودار رو خواهیم داشت درسته یا نه؟ همین رو تجربه کردین؟ درسته؟ این چیزی مثل اه حسادت اینم میشه یه نوع بیماری باشه ببینید شزندازه ببینید تیک های شخصیتی دور پنج وای وای وای وای دور پنج با دوستان دور پنج اون برخورد نکنیم تیک های شخصیتی اونجا میاره رو وای وای وای خب اون تیک شخصیتیه خب اونا تیک های شخصیتیه بعد یه اسکنی داریم دور پنج. یعنی سعی کنین از کنار دوستان دور پنج ما عبور نکنیم یعنی ببینید نمیشه گفت که بیماریه آخه این بصرف بیماری هم هست هم نیست خوب هم نیست ما تیک عصبی داریم تیک شخصیتی هم داریم یه نوساناتی در شخصیت هست این نوسانات رو حالا یه تیکیه و عمدتاً باید باش خوب برخورد بشه و بیاییم به مورد شناس های قرار بدیم که البته توی اسکن باید این صورت بگیره اگر به هر که بگیم شما حسودی میگه نه بگیم مثلا مغروری میگه نه خب اینا ولی باید به زور بکشیم بیاریم بیرون خب باید بی نشون بدیم بله بله بله بله دفاعی باید این نه نه نه رفتی به تششعات دفاعی نداره تششعات دفاعی باید خودش مهاج خوب، خوشبختانه جسمی و ربانی این مسئله رو داره خوب، تا اینجا کدوم مشکل تر بود؟ تا بینیم موارده که تا اینجا بررسی کردیم مشکل تر بود حالا خیلی از دوستان در جوام علمی فکر میکنن که این کارها مال که مثلا ربانتنی باشه، سایکستوماتیکی باشه در حالی که روی مثلا بیماری سایکستوماتیک ببینید که مثلا کار بیشتره و مسئله جسمی راحتتر انجام میشه تا مسائل تا روانی و ذهنی جسمی راحتتر نمودش همه چیز خب این حالا در مورد مسئله ذهنی هم که میرسیم الان خدمتون توضیح بدم جانم اینکه مودایی که جسمی کشیدین هیچ حالتی نیست که مثلا بدتر بشه فر بدتر بشه اولش که اسکن میکنه من توضیح دادم الان میاره رو شدید میشه خب بعد شروع میکنه به نم نمودارش نمیشه دیگه ببینید اگه نمودار واقعی بخوام چیز کنیم اینطوری میشه نمودار واقعی بعضیا گفتیم اینجوریه ها. ها نه اصلا پایین نمیاد خب پایین نمیاد بعضیا ولی بعضی های دیگه چرا به اوج میرسه خیلی شدید میشه و بعد از اینجا شروع میکنه به بهبود پیدا کردن عملاتا نمودار درسته، اغلبش اینه. یه درصدی هم نه اصلا بدتر میشه مثلا اونو که بوران خوب میشه، در واقع اصلا پایین نیامده. یه سره بالا بوده. حالا. جیانا. در رابطه با مسئله که شما میفرمایید، حالا یه سری مسائل می به میشه به ترم‌های بعدی 3 4 5 که مثلا اتصال میدیم به حلقه‌های دیگه. این من جا نمیفته وقتی که شما میفرمایید ما به شمکه شعور کیهانی در ارتباط هستیم اون شبکه دیگه اونجا، این مسئله طبقاتی برمن جا نمیفته طبقاتی نیست، حلقه های متعدده خب این حلقه‌هایی که شما میفرمایید، حلقه های معنویه درست؟ خب، حلقه معنویه مسلمان اگه فیزیکال بود، الان یکی حلقه روز کسر رو کلمون ملمنون. این دیگه زمان نمیخواد یعنی الان ما که اتصال داریم به اون شبکه‌ی شعوره کیهانی اون باید پوشش بده ما رو اما در مورد این مسئله‌ای که الان شما فرمودید ببینید پوشش دیگی رو شما این دوستمون که سوال کردن شما فرمودین برای ترم بعد من شما رو فرضاً متصل میکنم به یه حلقه دیگه بله هر حلقه چند در هر دوره میکروفونو لود کنین داشته باشین اون یکی دستونه او این حلقه شعوره در واقع کیهانی هستیم در واقع حبل الله که فرمودین درسته خب برای خداوند دیگه اینجا مسائلی نیستش حالا من بیافتم تو ترم بعد بنده ای که الان احتیاج داره یک نفر بخواد واسطه بشه منو اتصال بده به اون مسئله کما اینکه این سوالا به بله. مختلف خب اجازه بدین متوجه سوالشون شدین که در این صورت ما تا به شما اتصال میدادیم که شخصزیدهتون میومد رو موجات غیرگانیک میومد رو بیماری ها میومد رو نیمدونم رفتار دو گانه میومد رو بحث های دشار میومد رو بحث مسئال خاطرات درون و بیرون و یک دفعه شما به طور کلی از دست میرفتیم حالا اجازه بدین یه دو تا حقش اجازه بدین شما یه حلقه انشالله تشش و دفااعش هم تشرید بیارین یه دو تا حلقه اینا بیاین بعد تازه متوجه می چی میشه؟ چه میشه خوب الان مثلا دوستان قدیمون اونجا دارن میخندن به این به اسکه یعنی مثلا توی یه دوره رو که این بند خدا گذروندن با بیرون زیاش و با مسائلش و اینا میدونن که حالا کار داره اگه قرار بود همه اینا بر هم منطبق میشودن و تازه شما زمان رو هم خارج گذید از این مسئله یعنی آن بود یه دفعه شما اصلا به طور کلی از کنترل و تعادل و همه چی خارج می شدید بله شما درست می فرمایید ولی این زمان رو خود اون در این شبکه که ما بهش متصل هستیم میتونه اعمال بکنه درسته مثلا تو زمان خاص خودش اون تشخیص میده دیگه شعور داره. ببینید شما باید برای هر موردی تصمیم بگیرید بخواهید آیا شما میخواهید تیکای شخصیتیتون روش کار بشه؟ پس باید اختیار بکنید آیا شما میخواید ویروس های غیر ارگانی روش کار بشه؟ باید اختیار کنید آیا شما میخواید نمیدونم تیکای عصبیتون نمیدونم ربطار های دوگانه نمیدونم چی روشن کنیدونو سوال من همینه اگه خودمونم بخواییم بدون حضور تو جلسه حالا ترمایه بعدی این امکان هست یا نه تا بارده بارد تا بارده حلقه نشید. کاری انجام نمیشه من حالا، نمیشته. حالا میگید میشه؟ بکنید شما من میگم نمیشه یعنی تا وارد اون هیت نشیم نمیشه خب بلی شما تجربه میکنید الان اجازه بدین؟ اجازه بدین؟ شما مثلا میتونید آزماهش کنید؟ آزماهش کنید در یه جه افرادی هستند دردمند، مشکل دارد، پلان بیسار همش دارن این میکنن. اون بر می کنن و شدیدن میخوان بهبود پیدا کنند اتفاقی نمیافته. امتحان کنید شما باید اول خوب گوش بدید بزرم این اونها چی میگن؟ چیتون میگن؟ بعد پا بذارین جلو بگید چیتونه؟ خب مشکلتون چیه؟ یه توضیح یه ارتباط ببینید صحنه عوض میشه یا نه پس تا حلقه ای نیاد تو کار اتفاقی نمیفته شما امتحان خواهید کرد تو حلقه های مختلف مخصوصا تجربه و دفاعی اینا رو تجربه میکنید تا شما نرید وسط اتفاقی نمیفته بنابراین باید حلقه ای باشه در کار حلقه ای باید باشه تا این کار صورت بگیره مجد. این تجربه است چی بگیم؟ این تجربه است درست غلط اینجوریه همینه که هست اینجوریه نمیدونیم گفته بخوانید باید خواسته بشه باید اختیار کنیم باید بیایم دنبالش اگه بخوام بیشتر صحبت کنم شاید زختی جلسه گرفته بشه انشالله با همون تجربه که شما میفرمایید بله, بله بله بس. من چون اینا حل میشه همه این دوستانی که حالا یه خورده قدیمی ترن فرض کنید صحبتشون رو گوش بدن می دونن که خودشون هم زمانی زمان رو داشتن ولی بعدا فهمیدن که نه موضوع به یه شکلهای دیگه ای هست و بایدتون خب بیایم سراغ بعضیها بعضیها از نقط نظر فرزند ترس خب در حدی از ترس قرار داشتن ارتباط که برقرار میشه ترس شدیدتر تر میشه و بعد خب اینجا ترس شدیدتر میشه بعد میاد رو به بهبود اینجا دیگه نرمال میشه ترس های دوران کودکی ناخودگی حالا حتما مال کودکی هم میتونه نباشه ها تحت یه شرایطی دفعه میگم که یه آدم بزرگسال نمیدونم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید و سیاه میترسه یه آدم بزرگسالی تا امروز نمیدونم از هیچ چیزی نمی ترسی از امروز میترسه یعنی این تونسته به ناخودآگاهیش را پیدا بکنه حالا مونتا عمدتاً اینا بیشتر در دوران کودکی ممکنه باشه و همین دلیل ممکنه به این چیز باشه پس اینو وقتی میاد کار میشه اینجا شدیدتر و در این بخش که میرسه موضوع منتفی شده بعضی های دیگه گزارشی از ترس نداشتند. افرادی بودن که نرمال شوش گزارشی از ترس نداشتن در معرض اسکن که قرار میگیرن اینجا وضعیتشون عادی بوده اینجام عادیه اما اینجا ترس بروز میکنه یعنی وقتی در مرض اسکن قرار میگیرن یا گرفتن اینجا ترس ظاهر میشه شما پس ارتباط بدید به کسی یعنی اونو منتصل کنید آدم های عادی ولی یه دفعه اینو که ترس های کابوس هایی ظاهر شد و بعد تموم شد، محب شد، عادی شد چند نفر داشتیم اینجوری؟ خب حالا عادی نشده؟ میشه خب پس اینجا میاد رو دیگه حالا بعد میانو که برای شما یک مسیر تورانه روشیبه بهتر شده؟ یه مقداری بهتر شده ببینید که جالبم هست که اینجا دیگه زیگزاگی نیست مثلا اینشون میگه بهتر شده حالا من مثلا بحث برای ایشون این نمودار رو بکشم مثلا بحث بینید که میبینید ایشون اینطوری بوده اینطوریه یعنی این شیب یه خورده ای از شیب یه نفر دیگه که تموم شده چیه؟ بیشتره ولی فردا اگر ایشون رو ببینیم سوال کنیم میگه باز بهترم یعنی فردا بهتر از امروزه بهتر از دیروزه یعنی روند ببینید این نمودار ها میتونم بگم به اعتمال بیش از 90 درصد دقیقه یعنی شما میتونید بینی اوضاع رو تا حد زیادی داشته باشید اینطور با اسکنه اول اینا خلوز بده میشه اینکه مردمشون اسکن بکنید خب بحث کنید حالا شما تجربه میکنید ببینید که غرف یک دو سه هفته نبیدارم چهار هفته نهایتا یک ماه یک ماه و نیم این پروسه ها خودشو از هم رقم نشون میده درست شد به هر حال نشون میده ترس باشه میاد رو این باشه میاد رو اون باشه میاد رو و یک نموداری خوب همراهی بیمار بشه میگه خوب شو بعد خوب شد اصلا میگه دیگه خوب شدی خوب شدیم تموم شد دیگه ولی ممکنه اصلا بعد از دو روز دو و این روز بده ما ببینیم خوب شد دیگه ولش کن شما وقتی امروز بینی خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه این دیگه فردان پس و اینا خوبه دیگه خوبه دیگه حالا ممکنه یک ما دیگه به یه علت دیگه ای مریض بشه ربطی به این مسائل نداشته خب این هم در این مورد یه نموداری داریم که این نمودار مختلطه و ممکنه یه فردی چند تا مشکلش با هم بیاد رو خب مثلا مسئله بیماری نمیدونم روانتنی اومده و از یه طرف دیگه نمیدونم بیماری جسمیش اومده از یه طرف دیگه نمیدونم این ترساش اومده از یه طرف نمیدونم خلاصه یک چیزی که شما نگاش میکنید غیر عادی نشون میده یعنی یه مشکل ذهنی یه مشکل روانتنی یه مشکل جسمی یه مشکل نمیدونم چی؟ خب اینا یه مشکل ذهنی هم اگه بهش اضافه کنیم آشمون تکبیل میشه. خب اینا اضافه شده حالا خودش گیج میشه. چون هر لحظه‌ای یه نوساناتی در درون رخ میده که از نظر اون کاملا غیر قابل توجیه. درسته یا نه؟ کسی داشتین؟ شما. خب دیگه چیزهای مختلف ولی با که اینکه خیلی عصبی میکرد ولی الان خیلی احساس آرامش دارم یعنی احساس میکنم که حالا همه اینا بیرون ریخته ولی در این حال خیلی آرومم باهاش کنار اومدم خب خیلی نه شدید میشه آرومه نمزوانی. یا کنار اومدیم نه کنار اومدم چون مثلا ببینید درد, درد جسمی که دارم واقعا یه موقع‌های آزار دهنده میشه از نظر فیزیکی خوب. ولی باهاش کنار اومدم یا مثلا وسواس یکی از وسواسی چک کردن یکی از مشکلاتی که همواره داشتم خوب. و خیلی بعد از اولین جلسه ای که اومدن بوروس کرد خیلی بله ترس از تاریکی اولین شبی که من از اینجا رفتم دیگه هر چی چراغ تو دنیا هود روشن کردم و وقت خوابیدم <تصفيق> ولی با همه اینا کرا... کنار اومدم میره میاد قبلا میتونستید کنار بیاین نه نه اینقدر شما فکر میکنید کنار اومدین نه. میدونید فکر مگه وسواس میشه باش کنار بیاین. مگه گیدیم ترس رو میشه باش اینجوری کنار بیایین نه نه بهم. میگم میگم آرامش دارین به همدیگه ندارین آرامش, آرامش دارید دارم. اون تسلطی که فکر میکنید باش کنار اومده نه تغییراتی رخ داده شما الان می‌بینید که بهتر آداپته شدید بهتر دارید باش کنار می قبلن نمیتونستین با واس کنار بیایید با ترس کنار بیاید با اون کنار بیاید با ولی الان می‌بینید که نه قابل تحمل شده یه هفته دیگه شما رو ببینیم روند کلی مشخصتر شده و بعد همینطوری همینطوری همینطوری و بعد این دیگه آرامش بتر بهتر بهتر تسلط یعنی بهبود خب بس بعضی ها اسکنشون چند جانب است خب یعنی در واقع اینجا اسکن چند کامپلکس خلاصه با همدیگه اومده این نوع هم خوب نیست خوب نیست یعنی که اگه فرد ندونه نه اینکه خوب نباشه خیر هر چی بیشتر و بیاره رو به نفع کیه؟ به نفع مونه دیگه هر چی بیشتر بیاره رو به نفع مونه ولی به شرط اینکه ما جیا زنیم یه دفعه مثلا پس کنیم طرف ما بگه من چرا اینجوری شدم آخ چرا اونجوری شد چرا این الان اینجوری میشه چرا اونجوری میشه ولی در این صورت ما باید آمادگی داشته باشیم اونا با ما به ما زین که دیدین که توی این حالت هستن نمودار رو براشون ترسیم کنید توی بروشوراتون هم هست نمودار رو ترسیم بکنید و به اونا علی کنید بابا اینه حالا میخوای خوای بخوای نمیخوای ن استاد زمانی هست که دست خود فرد نیست که تعیین کنه این مثلا اسکن جسمی باشه یا روحی باشه خب همه زمان همینطوره شک خب از مدرد... تعیین نمیکنه که من الان اسکن هم جسمی باشه بای... یا روانی یا اوولوییتش رو ببینید نقطه جالبیه اولویت این اسکن ها رو کی تعیین می کنه حالا برای یکی اومده بود اول این آورود بعد این آورود بعد این آورود بعد این آورود یکی رو سلام میدون همه رو با هم بیاره رو ما چیکار کنیم؟ لزامیه یکی یکی یکی میاد رو مال بعضیا با هم همه رو میاره رو هر چی از میرزه رو خب اصلا این بهتر نیست وقتی که فد جای جایی میبینه که توانایی داره خب این با هم بروز کنه این میتونه ما این دست شما نیست که <تصفح> <تصفح> این درس هوشمندیه درس خب تو دست... راحت شیم دیگه خب خب بله حالا شما میبرم حالا معما حل جده میگه راحت شیم دیگه ولی یه نفر که از موضوع اطلاع نداره میگه آی منو مریض کردی آی اینجوری شدم آی اونجوری شدم ببینید این مسئله این قضیه ترتیب یا اولویت اسکن دست ما نیست اصولاً ما در این قضیه تشخیص تشخیص انسانی نداریم ما نقشی نداریم نقش انسانی ما نداریم نداریم درست شد؟ لذا هر کاری میشه هر کاری میشه این هوشیمندی در واقع چیکار میکنه؟ تشخیص میده اول کدوم رو بیاره یا اول همه رو بیاره یا چی بشه ما اصولا تشخیص نداریم که مثلا به یکی بگیم به یکی بگیم که تو این مشکل داری نه ما اصلا کاری نداره. مشکل افراد محرمانه است ما حق، مداخله در مشکل افراد رو نداریم مهرمانه مهرمان است. ما سوال نمی کنیم هیچی هم نمی گیم. طرف افسرده است مهرمان است نمی دونم اینجوری مهرمان است اصلا ما لازم نداریم بدونیم ما فقط اگر الان اینجا داریم صحبت می کنیم به خاطر اینه که مجبوریم به صلاح در غالب درسی بحثای رو داشته باشیم ولی ما هرگه سوال نمی کنیم کاری هم نداریم. لذا. ما صرفاً کار خودمون انجام میدیم اون رو با ببینید هوش یک دی ان ای حالا زیرمجموعه هم داره این هوشمندی هوش دی ان ای هوش سلولی هوش فردی هوش جمعی این کاری که انجام میشه پیوند شعوریه پیوند هوشمندیه این چند تا هوشمندی رو ما به هم وصل بکنیم یعنی این تز علمیه توجه میکنید یه تزیست که ما برای چند تا دانشگاه یا مرکز تحقیقات حالا دوستامون یه اشاره کردن اونا نامه هاشون از ما الان تو کیفم هست فورا زدن که شما کجا هستین چی میگید بیاد ببینیم که نیم دنبن. دو سه سال پیش که برای یکی از اینجا این تز یه اشاره کرده بودن اونا فورا گفتودن که بگید ما بهتون ویزا بدیم کجا هستین چی میخواد چطوری چجوری میشه وارد این قضیه شود. و بحث حالا کاری نداریم که ما میخوایم این مسئله ایران در واقع و به نام این ممله در واقع چشه تز پیوند شوری یعنی این شورها به هم متصل بشه همین اتفاق میفته که شما دارید تجربهش میکن. این حالا با زبان ساده بی زبانیشه اگه بخوام بریم تو برش خب میتونه مسئله دیگه هم در واقع چی بشه پیدا بکنه. موضوعش هم خیلی ساده است پیچیددم نیست. لذا تنها کاری که شما دارید انجام میدید که این هوش ها رو هوشای بریده بریده تیکه تیکه رو چیکارش میکنید توی یک تراز قرار میدید توی یک ردی به هم پیوند میدید بعد متوجه میشید که این هوش جمعی هم جز هوش خودمونه از جز هوش خودمونه منتهیات جدا از ما ظاهرا جدا از ما ما توش شناوریم لذا پیونده پیوند شعوری این اجزا پیوند شعوریش میتونه کار انجام بشه خب اینو چه جوری بگیم؟ با چه زبانی بگیم؟ خب و بایستی در واقع الان داریم بخش تجربیشو پشت سر بگذاریم علوم تجربی همینه دیگه علوم تجربی میاد یک واقعیتی رو در تجربه زیر نظر میگیره بعد میاد رابطه این تجربه رو چیکار میکنه؟ پیدا میکنه علم کارش مثلا تعریف واقعیت هاست و پیدا کردن رابطه بین واقعیت ها خب الان همینه که این کاری که شما انجام میدید پوسترش میاد میگه این واقعیت به دنبال پیوند شعوری عیزا صورت میگیره این رابطه رو پیدا میکنه عرضه میکنه میشه علم همینه که شما الان میگین موجزه فردا علمه مثلا یک کتاب اگر شما... کتابش وزارت ارشاد ان شاء الله بیاد بیرون چشم اینو که داریم تقدیمتون میکنیم دوله. که در واقع بله اینا همه کتاب داره همینا ببینید در واقع مثلا ترم 1 میاد ترم دو اینا امید انشاالله تاالا ولی یه مشکل داریم مشکلی که داریم مشکلی که داریم ببینید معمولا یه کتاب که میخواد چاپ بشه مخذ داره خود کتابه. هی hey, براش تیکه دیگه اینو نوشته می نو از کتاب فلان اینو می مینیوس رفرنس اونجا. اینو مینییسه حالا خودش هم این وسط چیزایی رو هم اینها رو به هم پیون داده. ما خب اینا رفرنس نداره. اینا همه شعرپ خودمونه رفرنس نداره مشکل اینه که میگن محخز حالا یعنی اگر کار تحقیقاتی بخواد انجام میشه کار تحقیقاتی به سلاتون مملکت این مشکل رو داره چون محخز نداره ول معطله یعنی نمیشه از کرم خدمتون بله بله بله بحث بله که کتاب این اطلاعاتی که شما جزو ننویسین به ور نداریم بله خب اصل موضوع خود اتصال هست بله کتاب که کاری انجام نمیده کتاب به صلاح جمعانوری ایناست که این, این چیه اون چیه اینا رو در واقع توضیح داده میشه خب دوستان عزیز یک رب زنگ تفریح داریم بلی فقط لطف کنید یک گروپ